This is the BBC. This podcast is supported by advertising outside the UK. <laughs> من این ملت دومت... انقلاب نقطه آغاز ندارد تحولی تند است در امتداد تاریخ از این رو ریشه های انقلاب ایران را باید در تحولات پیشین جست که شاید مهمتر از همه نهضت مشروطه باشد ایران با نهزت مشروطه به جهان نو گام نهاد و آرمان های مشروطیت یعنی آزادی استقلال و حکومت قانون پس از هفتاد سال آرمان های انقلاب بود. تا کنون مردم ایران تحت فشار شاه بودند و استقلال هم نداشت است. مملکت ما، ما میخواهیم که مملکت را استقلال بشه و مردم را هم آزادی و حکومت اسلامی هم یک جمهوری است مثل سائل جمهوری ها قانونش قانون اسلام است آزادی و استقلال را که آیت الله خمینی در حکومت اسلامی دست یافتنی میدید دید محمد رزاشاه در قانون اساسی مشروطه وعده میداد. من حافظ سلطنت مشروطه که محبت الهی که از طرف ملت به پارشاه تصفیل شده است هستم من اشاره که شما برای به دست آوردنش قربانی دادیید تذین می‌کنم. تقویم می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی فدرات و برقرار نمی‌نی، دبدوره قسمت بابا قول که شما فرادی این که شاه در ماهای آخر سلطنتش از آرمان‌های مشروطه یاری می‌جست، حاکی از خاطره زنده مشروطیت در ذهن مردم ایران بود. دکتر کریم سنجابی از کسانی است که خود سالها برای رسیدن به این آرمانها تلاش کرده است مردم ایران از بیش از 100 سال در واقع روشنفکری ایران و ایران مداران و خواهان استقلال ایران در یک مبارزه پیگیری علیه زورگویی خارجی هستند با اون از زمانی است که تزاریسم روسیه از درفی و امپریالیسم صاحب قاره هند از طرف دیگر شروع به مداخله در ایران کرده و دستگاه های حاکمه وقت را از سلطان گرفته تا عوامل بردست سلطان و ایادی متنفذ در شهرستان ها همه کم و بیش تسلیم سیاست خارجی شده بودن بنده حقیقتاً این است که نهزت مشروطیت یک نهزت ضد استبدادی بود درسته ضد شاه بود ولی واقع در بطن عمل یک نهزت ضد استعماری بود یعنی چون مردم می دیدن این عوامل سلطنتی و حکام و دوله ها و سلطنه ها همه تسلیم سیاست بیگانه شدند میخواستن به وسیله دستگاه مشروطیت اینها را ضعیف بکنند و به نتیجه با سیاست استعماری با سیاست خارجی مبارزه کنند ایران در حالی از خواب 300 ساله برمیخواست که ممالک اروپا نه تنها بر اثر تحولات فکری ترقی کرده بودند بلکه بر کشورهای خابالوده سیتره یافته بودند سید محمد علی جمالزاده از نسلی است که با آغاز بیداری ایران تولد یافت ما عقب افتاده بودیم مخصوصا از سیست کتاب از سیست اختراعات از سیست کشفیات جدید ما از درقیات مادی که امروز اسم تمدن را ما بیشتر به او میدهیم خیلی عقب مونده بودیم در یک کتابی دیه نثار بلژیکی نوشته به فارسی ترجمه شده در زمان قاجاریه مؤلف این کتاب در آخر کتابش نوشته من در ایران همه جا رفتم متوجه شدم ایران حکمی بهی را داره که پکت خدای این به اسمش پادشاه شده و این پادشاه مظفرالدین شاه بود او در سخنانی خطاب به صدر اعظم زمان اتابک اعظم خود را سایه خدا می خاند. این خدماتی که به من می کنید، به من بگذیران می البته خداوند او را بیدی عوض نخواه کده است. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم با به شما خواهم داد. از خدمات همه بودره هم راضی استیم. به شما هم خدمات همه را حضیدتاً. خوب عرض, می کنید. عرض می کنید و همه به موقع عرضی و عطابک اعظم هم خوشنود است که غلام خانزاد پادشاه باشد این قلام خانزاد, قلام خانزاد به صدرانه که در مدت 40 سال شامل حالی در غیبی نقدار است اگر که سال اوم داشته باشم و حکمت گذاری بکنم سیطره خارجی استبداد و انهتات تازگی نداشت اما بحرانهای مالی و اقتصادی اسباب نارضایی شدید مردم شد و زمینه نهزت مشروطه را فراهم آورد به نظر دکتر هما ناطق مورخ مشروطه این ها نتیجه چند عامل بود یکی پس ایت خود دولت ایران بود به خاطر قرض هایی که از اواخر دوره ناصرالدین شاه اینها از روس ها و انگلیس ها گرفتن و این قرض ها در دوره مزفر شاه دو برابر شد هم به انگلستان و هم به روسیه یعنی خزانه دولتی در واقع به ویژه به خاطر سفرهای حتی مزفر شاه به اروپا خالی شد یکی پس بنابراین ضعف خود دولت بود از نظر اقتصادی بحران در بازار به وجود آمد به ویژه از 1904 چون جنگ روس و ژاپن شروع شد ارزاق که ما مهمترین ارزاقمون از روسیه می آوردیم به ویژه اینها نتونستن دیگه به ایران بسنگ یعنی ایران دوچار بحران کم بود شد در همین سال که 1904 باشه وبا به ایران زد و همینطور به قفخاز در نتیجه روس ها درست کردن در مرحب ها و در نتیجه داد و ستت با ایران به کلی قهد شد یعنی این دو تا عامل نه تنها به بازرگانان ها رو به ور شکستگی کشوندن بلکه نارضای مردم رو به وجود آوردن برای خاطر اینکه که در ایران به وجود آمد و یکی دیگه باز عبارت بود از این امتیازات پی که داره مودم مثل بانک مثل کمباکون به اروپایی ها برخی از اصناف ایران رو به بیکاری کشید در ایران مثل, مثل امتیاز بانک سررافان به کلی بیکار کرد و ناخرسندی از این امتیازات هم در بعضی از اصناف ایجاد شد همراه با این نارضایی ها مبانی فکری مشروطه تکوین یافت آگاهی از مظاهر ترقی مغرب زمین و علل این ترقیات به گفته دکتر احسان نراغی اعتقادات جامعه و هیئت حاکمه را سوست کرده بود. چند عامل که من به سرعت بهتون میشمورم مسافرت های ایرانیان به خارج بخوز مسافرت های خود و مزفردین ناصر الدین هر بار که از سفر خارج برمیگشت یک سلسله اصلاحاتی رو میخواست شروع کنه که البته با طبیعت استبدادش سازگار نبود ولی اقدام میکرد نمیتونست منکر این پیش بشود انقلابات در روسیه انقلابات متعدد تیه قد نوزده رو متوجه کرده بود که آزادیخواان روسیه چه میگویند و از چون از استبداد تزارها در رنج بودن اون مردم هم از همین استبداد مینالیدن، اینا یه همدلی با آزادی خواهان روسیه پیدا کرده بودند. مسئله دیگه مشروطیت در ژاپن بود و پیش اون که وسیله روزنامه های مثل حبدالمتین کلکته به اطلاع ایرانیا می رسید. دیگر مسئله همین مسافرت سید جمال الدین بود به ایران، که معروف می میگن ابوالحسن جلوی وقتی که از منظر امین‌الظلمی اومد بیرون باز دیدار اولش با سید جمال گفت من الان کفن میپوشم ببینم برای استبداد قیام میکنم یعنی این جور اون قدرت عجیبی داشت در تهییج مردم بعد مسئله انحصار لغو انحصار تنباکو بود که دقیقاً یک انقلاب بود که در در شیراز و اصفهان و تهران انقلاب شد یعنی درگیری مردم بود به طور مسلحانه به دولت دولت معتب اونها سرکوب میکرد و یعنی به تمام یه حایت انقلابی بود در دوران رژی بعد مدارس جدید و روزنامه ها و شکست روس از ژاپن یکی از نکات حساسی که نشان میده چقدر رهبران مشروطه با روشنبینی عمل کردن شکست روس در جنگ از بود از ژاپن که اینها متوجه شدن که حالا که حریف ضعیف شده حریفی که از, از استبداد قجر حمایت میکرد و حتی خیال داشت شاید ایران رو هم تسخیر بکنه به دنبال کاری که قبلنگ کرده بود قبل از جریان ترکمنشای ترک این به ایرانی ها این فکر رو درشون کرد که حالا موقع حرکته علما و آزادی هم زمینه را برای این حرکت آماده می کردند یکی از آنها سید جمال الدین وائز پدر جمال زاده بود در این گیرودار پادشاه ایران پادشاه بیورزی بود اسمش مزفر الدین بود دید که کارش داره خراب میشه، یک نفر آدم خیلی گردن دیر به اسم این و صد رزم ایران کرد این ایناد دوله بر خراف بین بی آویت مختبر بود ایناد دوله خیلی کارهای زیاد کرد از جمله کارهای که کرد یک حاکم برای تهران نامید که اسمش علاغ الدوله بود علاغ الدوله هم از اون ظالمه های قریب و عجیب بود از دور نماز که میخون از دور چند نفر را با اشاره نشون میداد که سرشون رو بگاری این حاکم تیران شد و برای اینکه اقتدار خودش را و اینا دوله را و شاه ایران را نشون بده شنی که در بازار یک سیدی از قند میفروشه، اسمش قندی بود سید قندی فرستاد این سید را با فراش را وردن به دارو لکومه و ای پدر سوخته تو قند رو جروم مفروشی و اینا این سید را چوب زد چوب زدن این سید اسباب سوی بازاری ها بازار رو بستند و رفتند خونه عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا طبع در محلی سنگلت اینا دو نفر از علمای بزرگ ایران بودن. اینا رو بردند تو مسجد شا جمعیت اومدن که در من رو از خانه کشیدند برون برتن در همون مسجد مادر من همیشه وقتی پدرم را می بوردن جایی من بچه یاد ددواز زدن گوه برو ببین پدرت اگر خطری بشتیسید زود بیا به من مرم اقا به پدرم رفته بزن به مسجد دوتا سیگدین، سندین که هر دو از دیشوایان از شدن اون بالا نشسته بودن مسجد پر بود از جمعیت یک منبر را در وسط مسجد گذاشته بودن پدر من رو گفتن بره وز بکنه امام جمعه که داماد مزفر بود آمد پایین منبر پدر نشد مردم خیلی خیلی طرف پدر من شده بودم پدر من رفت برای منبر همیشه آهی از قرآن میخوند بعد تفسیر میکرد و با زبان مردم با زبان عوامانه با مردم صحبت میداد. از عقل لبود که در قرآن خیلی هست در مذهب ما که ملت ملک مع الكفر و لا مع الظلم یعنی مملکت با کفر و کافری بقا پیدا میکنه اما با ظلم و اذیت و آزار مردم بقا پیدا نمیکنه را هم گفت با شروع کرد به که بگه اگر پادشاه بد باشه باد چه کار کرد به مهد گفت اگر پادشاه ظالم باشه صدای امام زوبه بلند شد ای سید چه میگی؟ بیاید دیره بکشید از من بعد پایین به پادشاه اسران بدگویی میکنه مسجد به هم خورد چراغای محجد خاموش شد صدای چرخ به گوش مردم رسید، مردم خیال کردند، دولت توپ فرستاده و مردم ترسیدند و دو نفرم جوانم آمدند، از اون اطراف را مرا در بغل گرفتند به طور که پدر من پاهاش بدون چفش موند و از مسجد بردن. این اولین حرکتی بود که از طرف ملت ایران و ضد دولتش این حرکت در ماه های بعد سرعت و شدت یافت، حرکتی که به گفته دکتر هماناتق بیشتر متکی به انجمنهای سری بود تا اجتماعات عظیم مردمی. مشروطیت بیشتر در انجمن ها شکل میگیره. یعنی در نشست ها و در مشارکت مردم در بحث ها این روش هم فکران هستند که مردم به مشارکت در صند بشته خودشون فرا می خوانند. این یک نکته خیلی مهمی در انقلاب مشروطیت یعنی انقلاب مشروطیت انقلاب فکر شده بود. و فکر و عمل انقلابی آنچنان که احسان نراقی میگوید حاصل اتحاد سه نیروی روحانی، روشنفکر و بازاری بود من برای اینکه بهتر مجسم کنم تکوین و دقیق امتزاج و اختلاط این افکار سنتی و مذهبی رو با افکار خارجی یه صحنه ای رو یادآوری میکنم اون صحنه به از این است که و شش نفر در ماه ربیل اول هزار بیست و دو یعنی دو سال قبل از بروز انقلاب و صدور فرمان مشروطیت به طور مخفیانه در باغ میز سلیمان می میکرده اجتماع میکنند و با هم برای مبارزه علیه استبداد هم قسم میشن. وقتی دور میز جمع یه میزی وسط باغ بوده وقتی دور میز جمع بشن سیدی از زیر عباش یک پرچم ایران میاره بیرون که روی اون پرچم نوشته بود قانون و ادالت و در کنار اون پرچم یک قرآن مجید میذاره روی میز و دعوت میکنه همه رو به قسم خوردن یک یک میان با شور و جذبه و اشتیاق فراوان و حتی کسی که این مندلس رو تعریف میکنه میگوید اش در چشمانشون بود پرچم رو به علامت وفاداری به ایران و قرآن رو به عنوان کلام خداوند بلند می کنن و قسم یاد می کنن که برای ثمر سندن این نهزت دست از جان بشویند و اسرار این جمع و این مجمع رو فاش نکنن به هیچ قیمتی حالا من به شما چند تا اسم از این حضار میدم. اولا اون سیدی که از زیر عباش درورد پرچم ایران رو و قرآن مجید رو اون سید سید جمال الدین بود یعنی پدر جمال زده در کنارش ملکم متکلمین اصفهانی بود حاج میزایه دورت آبادی بود ابوالحسن میزایه شیخ الرئیس بود حاج شیخ مهدی کاشی یعنی کسانی که به اسلام واقف بودند و مبانی دین اسلام رو خوب میشناختند و فرهنگ اسلامی قوی داشتند. در کنار اونها کسان مثل میرزا محمد حسین خان زوکال ملک بود که کتاب زیادی تجربه کرده بود از فصل فرانسه و انگلیسی میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه میبینیم که اینها آگاهی داشتند به تحولات فکری در اروپا به خصوص در فرانسه میرزا اصلا رشدیه بود که مظهر معرف جدید جلالال ایراد ایرت شعار متجدد بود آقا محمد حسین تاجر معروف به خیاط و صید عبدالرحیم کاشانی از تجار و خوشنام و بازاریهای معروف بودند این نشونه اینه که این نیروهای مختلف ینا راه تفاهم با همو پیدا کرده بودند مابین مجددینی که از افکار رو می میاوردند و کسانی که در ایران بودن و از مباحث دینی و اسلامی حرف میزدند روحانیان که به دنبال واقعی چوب خوردن سید غندی در شاه عبدالعظیم بست نشسته بودند پس از گرفتن وعده تأسیس عدالتخانه به تهران برگشته بودند اما شاه و صدر ازم در وفای به عهد تعلل می و آزادی خواهان را در گوشه و کنار مملکت آزار می‌دادند. من که جمع هستم یک شب با پسرهای ملک کلمین در تهران من بردن منزل خودشون تابستون بود تو حیات خوابیده بود یه دفعه بیرار شدم دیدم اشخاصی از نظمیه میان توی حیات برای که ملکرون کلمین را بگیرن ملکرون کلمین در خانه نبود اینا همینجا با شمشیر توی آب حوز گردش کردن و دو پسر ملکرون کلمین را گرفتن بردن به نظمیه آمدن سر من تو اینجا چیکار؟ من به زبون اسوانی بودم من, من قومی خیش اینا هستم از اسوانو میدم. دقیق بگیر به تمر فردا از اونجا رفتم به مدرسه مدرسه ادب. نازم مدرسه من رو صدای کرد با آسید من دلی از آقا خبری داره یا یعنی از پدرت گفتم نه خیرمدشف گفتم زود برو خونه بگو که تو شهر در زمان اینو دوله بود تو شهر شلوخ شده آمدم دیدم شلوخ شده یک سیدی را سربازای سیلاخوری کشتن یک سید مشدود درب را نشش رو بردن توی مدرسه از اون مدرسه های قدیمی دارن میشورن که اسم این سید حمید بود اسم این دوله صدر ازم ایران مجید بود و از اون به بعد تصنیف درست شد عبدالحمید کشته عبدالمجید شد من رفتم به پدرم گفتم پدرم فوراً لباس پوشید گفتم توی متجه جوم هم جمعیتی بود من و پدرم رفتیم به متجه جمعه. همین همین به بهبانی مثل واقعاً مثل شیر اون روی یک ایوان نشسته بود دور تا دور ایوان رو مشروط طرف ها یک دفعه باز توی بازار صدای گلوله شنیده شد مردم فرار کردن راه پله پشتبان رو پیش گرفتن من هم راه پشتبان با اینا رفتم روی پشتبان اما مردم بازارها رو خوب نشناختن رفتن روی پشتبانهای بازارها مفقود شدن من یه دفعه خودم را تقریبا تنها دیدم گفتم خب میرم پیش پدرم پدرم اون پایین آمدم پایین دیدم مسجد خالی خالی شده ولی یک نفر نشسته و سید عبدالله بود سید عبدالله بیضا مستشیر ام اون واقعا به عمرم فراموش نمی و پس از این بود که واقعیه بسنشستن در قم پیش آمد آقایون سید عبدالله به و سید محمد تباطایی رفتن به قم در قم بسنشستند ولی اونها بینهایت، در تهران اهمیت داشتن همون وقتی بود که اون مرد بازاری رفت به سفارت انگلیس و بثنکستند و مردم حجوم وردند و طرفدار آزادی شدند بالاخره مجبور شد مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروطیت بده و ایران دارای مشروطه شد آزادیخواهان پیروز شده بودند اما این هنوز اول راه بود